شب هفتم در ابتدای مجلس جناب نواب که یکی از بزرگان شهر بود سوالی را مطرح کرد حضرت آقا چند شب قبل جناب آقای حافظ سوالی را مطرح کردند ولی شما از جواب دادن به آن تفره رفتید کدام سؤال؟ دلیل شما برای این که علی کردمند و بشهو با رسول خدا اتحاد نفسانی داشت، چیست؟ دلیل ما آیه مباهله است. آیه مباهله چه ربطی به این موضوع دارد؟ ربط آن لفظ انفسناست که در آیه شریفه آمده. مفسرین می نویسند در جریان مباهله پیامبر با نصارای نجران، امراهان پیامبر منحسرن امیر المؤمنین، فاطمی زهرا امام حسن و حضرت سیدالشهدا بودند. حالا اگر در آیه دقیق شوید میابید که مصداق ابناعنا آنها امام حسن و امام حسین هستند. مصداق نساء حضرت فاطمی زهرا و مصداق انفسنا حضرت امیرالمومنین است. پس امام علی نفس رسول خدا و در جمیع کمالات شریک و برابر با پیامبر است. علاوه بر این آیه احادیث بسیاری نیز در تایید گفته من وجود دارد. رسول خدا فرمود، علی از من و من از علی هستم. هر که او را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر که مرا دوست بدارد، خدا را دوست داشته است. همین نکته دلیل برتری حضرت علی بر همه انبیا بجز خاتم الانبیاء است، از رسول خدا نقل شده که در علی نود خصلت از خصائل انبیا وجود دارد که خداوند متعال آنها را فقط در او جمع کرده حال آیا این بی انصافی نیست که چنین شخصیت بزرگواری را در خانه بنشانند و فرد دیگری را بدون دلیل و برهان بر او برتری دهند ما بی انصافیم یا جنابالی که که میگویید اصحاب پیامبر خدا بدون دلیل و برهان کاری را انجام دادند، آیا دلیلی بهتر از اجماع میخواهید؟ اجماع امتی را که در آن همه اصحاب حتی شخص علیبن عبی طالب کررم الله وجههو در آن شرکت داشتهاند دلیل نمیدانید؟ آیا این حدیث را قبول ندارید که رسول خدا فرمود امت من بر خطا اجماع نمی پس از رحلت رسول خدا امت اسلام با وجود اینکه می‌دانستند علی کرم لا وجهه صاحب فضایل بیشماری است ابوبکر و عمر را بر خلافت برگزیدند علت این انتخاب دو چیز بود اولاً علی جوان بود و ابوبکر و عمر مسن بودند سانیان، به به گفته عمر نبوت و سلطنت در یک خانواده جمع نمیشود. پس چون علی جزو خانواده پیامبر است، واجد مقام خلافت نبود. در پاسخ به دلایل شما ارز کنم که ما نیز اجماع امت را به عنوان یک اصل قبول داریم. لیکن به شرط آنکه تمام امت اجماع کنند که مسلما در این صورت، علی امیرالمؤمنین هم جزو همین اجماع خواهد بود و هر جا او باشد، حق هم همانجاست. ولی مگر در صقیفه تمام امت جمع شدند که ملاک شما اجماع امت باشد؟ خیر. تنها چند نفری از بزرگان در صقیفه حاضر بودند ولی در نهایت اجماع امت به تدریج کامل شد. شما به جمع شدن چند نفر در صقیفه اجماع امت میگویید؟ منظور از اجماع اجماع اوغلای صحابه است. از متن حدیث رسول خدا چنین چیزی برداشت نمی شود. بر فرض که حق با شما باشد، آیا اقلای صحابه همان چند نفری بودند که در سقیفه حاضر شدند؟ آیا در سایر بلاد مسلمانان هیچ آقل لایقی وجود نداشت؟ آیا عباس و علی جز اقلای اصحاب حساب نمی شدند؟ آیا رأی ابو قبر قبرکن برای انتخاب خلیفه بهتر از رأی باب مدینه علم نووی حضرت علی علیه السلام است؟ لکم کیف تحکمون؟ چرا به صحابی بزرگوار پیامبر ابو عبیده جراح توهین میکنید من توهین نکردم بلکه شغل او را گفتم آیا شما این هستید که او قبر کم بوده چون اوضاع مملکت بحرانی بوده و ممکن بوده فتنه ای بر پا شود و عمر چاره ای ندیدند جز اینکه کار را یکسره کنند لذا عمر با ابوبکر بیعت کرد و غیر از عده معدودی از پیروان سعد بقیه اهل مجلس نیز با رأی عمر موافقت کردند. از خود شما هم قبول دارید که حتی در سقیفه هم اجماع کامل صورت نگرفته ارز کردم که اوضاع بسیار بحرانی بوده و چاره جز عجله نداشتند آیا امکان نداشت که علی و عباس و دیگر بزرگان بنی هاشم را خبر کنند؟ علا ظاهر نه خیر قربان، فرصت داشتند بلکه عمدن آنها را خبردار نکردند دلیلی برای این گفته خود دارید چه دلیلی از این بهتر که عمر تا در خانه پیامبر آمد ولی برای اینکه مبادا علی و بنی هاشم از جریان اجتماع در صقیف خبردار شوند وارد خانه نشد. استدعا دارم این حرفهایی را که ی ذهن عوام شیعه است در این مجلس مهم مطرح نکنید؟ الحمدلله در کتب معتبر شما به اندازه کافی دلیل و برهان برای اثبات حرفهای ما وجود دارد و نیازی به جعل حدیث نداریم در برخی کتابهای معتبر اهل سنت آمده که عمر در خانه رسول خدا آمد ولی داخل نشد او توسط شخص دیگری به ابوبکر که داخل خانه بود پیغام داد که زودتر بیرون بیاید تا با هم به صقیفه بروند ابوبکر نیامد عمر دوباره پیغام داد که امر مهمی پیش آمده و وجود ابوبکر لازم است. ابوبکر بیرون آمد و با هم به سقیفه رفتند. در بین راه ابو عبیده جراح را نیز همراه خود کردند تا اجماع سه نفری تعیین خلیفه را به وجود آورند. از جمله بزرگانی که از بیعت با ابوبکر سرپیچی کردند، ابا اسد عبدالمطلب بود. اگر می معنای حدیث اجما را پیدا کنید، لازم است آن را در کنار حدیث سغلین و حدیث سفینه قرار دهید تا درایت حدیث نصیبتان شود. حدیث سغلین که مورد توافق جهان اسلام است، این گونه بود که رسول خدا فرمود، من دو چیز گران مایه، قرآن و اطرت را میان شما به امانت می‌گذارم. اگر به این دو مستمسک شدید، گمراه نخواه. این دو هرگز از هم جدا نمیشوند تا در حوض کوسر بر من وارد شوند. و ما حدیث سفینه مسئل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست. هر که به آن متوصل شود نجات می و هر که از آن سرپیچی کند هلاک می شود. اگر این دو حدیث را کنار حدیث اجماع بگذارید معنای واقعی اجماع به دست آن اجماعی حجت است که اثرت پیامبر نیز داخل آن باشد چرا که آنها ملاک حق و حقیقتند و ما اینکه فرمودید سن ابوبکر ملاک برتری او بر علی علیه السلام بوده بسیار دلیل بی و باطلی است لازمه ی حرف شما این است که با وجود ابی قحافه که پدر ابوبکر بود و در آن زمان در قید حیات ابوبکر نتاند خلیفه شود. زیادی سن به تنهایی کافی نیست. لیاقت ملاک است. خدا را خوش نمیآید که با وجود پیرمرد لایق و کاردانی مثل ابوبک زمام امور به دست جوان نورسی مثل علی بیفتد. اگر اینگونه است پس اولین کار غیر خدا پسندانه را شخص رسول خدا انجام داد. پیامبر در قذوه تبوک با وجود ابوبک علی را خلیفه خود در مدینه قرار داد. ری اکثریت قاطع مردم، بهترین دلیل بر مشروعیت خلافت ابو است این حرف هم درست نیست چون از رسول مکرم منقول است که به زودی بعد از من فتنهی برپا خواهد شد پس در چنین زمانی شما با علی باشید چون او اول کسی است که در روز قیامت با من مسافه می کند. او با من و در رتبه من است او جدا کننده حق از باطل است این حدیث ملاک حق را رأی علی میداند نه رأی اکثریت هر جا علی باشد حق هم همانجاست ولو اکثریت در جای دیگر باشد این حدیث که نقل کردید یک حدیث واحد است و ارزشی ندارد چه زود فراموش کردید که علمای اهل سنت خبر واحد را حجت میدانند علاوه بر این دلیل ما فقط متکی به این یک حدیث نیست بلکه در کتاب‌های شما از این قبیل احادیث فراوان است رسول خدا فرمود علی با حق است و حق با علی است و هیچگاه این دو از هم جدا نمی‌شوند در حدیث دیگر آمده ای جماعت امصار آیا شما را به کسی که تمسک به او از هر گونه گمراهی است دلالت نکنند عرض کردند چرا ای رسول خدا فرمود همان او علی است پس به خاطر دوستی من او را دوست بدارید و به خاطر کرامت من او را اکرام کنید. همانا آنچه به شما گفتم طبق دستور خداوند و توسط جبرئیل بود. خلاصه کلام این که اجماع بدون علی حجت نیست. اگر خلافت ابوبکر مشروع بود می باید علی با او بیعت می کرد و حالا اینکه ایشان بیعت نکرد و مخالف بود. اگر تاریخ سقیفه را با دقت مطالعه کنید در میابید که دسیسه ای در کار بوده و ادهی میخواستند بدون اطلاع بنی هاشم کار را یکسره کنند تا به اهداف دنیوی خود برسند. چرا شبه پراکنی میکنید هیچ دسیسه ای در کار نبوده، اوضا بحرانی بوده و عجله در تعین خلیفه به خاطر مساله اسلام و مسلمانان بوده است؟ لازمه یه حرف شما این است که ابو عبیدی جراح از امام علی نسبت به اسلام دلسوزتر بوده باشد و او وجود خطر را درک کرده باشد اما خاندان پیامبر هیچ توجهی به اطراف نداشته باشد چه دلیلی داشته که آنها تا این حد عجله کنند که حتی فرصت خبر کردن اهل بیت را هم نداشته باشند؟ فرصت داشتند و ما سلاح نمی که اهل بیت خبردار شوند. علت عجله آنها این بود که اگر صبر می کردند و نظر بزرگان صحابه و بنی هاشم را می شدند، دیگر شانسی برای برنده شدن نداشتند. جالب این است که عمر سالها بعد گفت خلافت عبوبک عجولانه بوده. خداوند امر او را به خیر فرماید و اما این قول امر که سلطنت و نبوت با هم جمع نمی شود مخالف نص سریح قرآن است. خداوند متعال می فرماید آیا برخی مردم به آنچه خداوند به آنها تفضلن عطا فرموده حسد می برزند؟ همانا ما بر آل ابراهیم کتاب و حکمت فرستادیم و به آنها ملک و سلطنت بزرگ عطا کردیم. آیا ممکن است پیامبر بر خلاف نس سریح قرآن سخن بگوید؟ طبق این آیه به همان وجهی که در آل ابراهیم بین سلطنت و نبوت جمع بود در دیگران نیز این دو امر قابل جمع است علاوه بر اینکه خلافت غیر از سلطنت است اگر جمع بین خلافت و نبوت محال است پس چرا عمر همین علی را در شورای انتخاب خلیفه وارد کرد جالب این است که نبوت با خلافت بلافصل جمع نمی شود. ولی با خلافت در رتبه چهارم جمع می شود. آقایان محترم، تعصب را کنار بگذارید به حق را به صاحب آن بدهید. اگر از رموز سیاست خبر داشتید به راحتی می توانستید علت عجله عمر را درک کنید. اگر قفلتی بوده یا نبوده ربطی به من و شما ندارد. چون ما در آن روز نبودیم پس حق نداریم چون این قضاوتهایی را داشته باشیم مسلما آنها دلیلی برای این کارشان داشتند غیر از این است که در نهایت اجماع صورت گرفت و همگی به ابو بکر و خلافتش رضایت دادند پس نباید در برابر این اتحاد مخالفت کرد بلکه همگی باید همان راهی که آنان رفتند را ادامه دهیم مرحبا به این استدلال. آفرین به این عقیده پس بنا به گفته شما هرگاه سه نفر در یک جای جمع شدند و چیزی را تصویر کردند و به همگی را به اطاعت خود واداشتند ما باجد می شود از آنها اطاعت کنیم ولی این را بدانید که مسلمان واقعی به هیچ وجه پیروی کورکورانه و جاهلانه از احدی را نمی پذیرت. به چه دلیل آرا و اجماع اده کسیری از صحابه را فقط به این خاطر که علی به آن رعی نداده نادیده می گیرید؟ از ابو ایوب انصاری در هنگامی که به وی به خاطر پیروی از علی و بیعت نکردن با ابوبکر اعتراض کرده بودند منقول است. از رسول خدا شنیدم که به امار فرمود ای امار اگر تمام مردم به راه می روند و علی به تنهایی به راه دیگر می تو به همان راهی برو که علی می و از بقیه مردم بی نیازی بشوید. ای امار، علی تو را از هدایت بر نمیگرداند و تو را بر هلاك دلانت نمی کند ای امار اطاعت من اطاعت علی است و اطاعت خداست در این هنگام صدای معزن بلند شد و آقایان برای ادای نماز عشا برخواستند پس از ادای نماز جناب آقای حافظ شروع به صحبت کردند. شما زمن صحبتهایتان مطلب عجیبی گفتید. چرا ادعا می کنید که علی و بنی با ابو بکر بیعت نکردند؟ در حالی که تمامی علما نوشتند که علی و بنی حاشم و اصحاب همگی با خلیفه بیعت کردند. ولی ما هم میدانیم که بنی هاشم بیعت کردند، اما چه زمانی و چونه؟ بزرگان از مبرخان نوشتند که علی و بنی هاشم بعد از شش ماه و پس از تهدید به قتل و تحمل های بسیار بیعت کردند. واقعا از شما بعید است که سخنان عوام شیعه را مورد استناد قرار دهید. این را بدانید که قطعا علی با کمال میل از همان روز اول با ابوبکر بیعت کرد. فرمایش شما صحیح نیست. واقعیت تاریخی مسلمان است که بیعت علی علیه السلام بعد از وفات حضرت فاطمه سلام الله علیها صورت گرفت. در منابع معتبر ضبط است که علی بعد از 6 ماه یعنی بعد از وفات فاطمه با ابوبکر بیعت کرد. به خدا قسم علمای اهل سنت در پیشگاه حق و حقیقت مسئول هستند زیرا آنان امر را بر مردم مشتبه می کنند و حقایق تاریخی را ساخته و پرداخته شیعیان معرفی می‌کنند در حالی که در کتاب‌های خودشان موجود است در کدام یک از کتاب‌های ما چنین چیزهایی نوشته شده چه کسی گفته که علی را به زور به سوی مسجد بردند و در خانه او را آتش زدند فاطمه را آزرده و بچه‌اش را کشتند این حرفها، تومث‌هایی است که شیعیان به خلفا میزنند یا واقعا مطالعات شما اندک است یا عمدن نمیخواهید زیر بار حرف حق بروید مشروح این مطالب در کتاب بلاظری متوفا 279 هجری قمری موجود است تبری در تاریخ خود ابن عبدربه در اقد الفرید، ابن عبل هدید در شرح نهجل بلاغه، ابن قطعیبه در الامامت و سیاسه، جوهری در صقیفه و ابن شهنه در روزت المناظر قسمت از واقعی تأثیر هجوم به خانه امیرالمومنین را آوردند. خلاصه جریان این بوده که ابوبکر علی را برای اخص بیعت احزار کرد. اما امیرالمومنین نیامد. ابوبکر عمر را فرستاد. امام علی حاضر به بیعت نشد. عمر آتش فراهم بر تا خانه را بسوزاند. در این هنگام حضرت فاطبه فرمود ای پسر خطاب آیا آمده ای خانم را بسوزانی؟ گفت آری این کار برای آنچه پدرت آورده قوی تر است. دیگری می نویستد. وقتی ابوبکر مطلع شد که دی از بیعت او سرپیچی کردند و در خانه علی جمع شدهاند عمر را به سوی آنها فرستاد عمر بر در خانه رفت و از آنها خواست تا بیعت کنند ولی آنها از خانه بیرون نیآمدند عمر هیزم طلبید و قسم یاد کرد که یا بیرون بیایید یا خانه را با اهلان آتش میزنند. مردم گفتند ای ابا در این خانه فاطمه است گفت او هم باشد میسوزانم پس همگی بیرون آمدند و با ابوبکر بیعت کردند مگر علی که فرمود من قسم خوردم که تا قرآن را جمع آوری نکردم از خانه بیرون نیایم عمر قبول نکرد ولی هنگامی که ناله فاطمه را شنید به ناچار سوی ابوبکر بازگشت و او را برای اقص بیعت تحریک کرد ابوبکر چندین بار قنفز را به سوی علی فرستاد، اما کاری از پیش نبرد. آقلت عمر با چند تن از اوباش مدینه به در خانه فاطمه آمدند. وقتی فاطمه صدای آنها را شنید، صدا به ناله بلند کرد که بابا، ای رسول خدا، بعد از تو چه ظلمهایی که از عمر و ابوبکر به ما میرسد. مردم با شنیدن صدای آن حضرت با چشمان عشق برگشتند، ولی عمر با همان همانجا ماندند تا در نهایت علی را به اجبار از خانه بیرون آوردند و نزد ابوبکر بردند و آن حضرت را امر به بیعت کردند. حضرت فرمود اگر بیعت نکنم چه کنید؟ گفتند به خدا سوگند گردنت را میزنیم. علی فرمود در این صورت بنده خدا و برادر رسول خدا را کشته اید. عمر گفت تو برادر رسول خدا نیستی سپس رو به ابوبکر کرده و گفت آیا جز این است که ما به امر تو این کارها را میکنیم؟ ابوبکر گفت تا هنگامی که فاطمه زنده است او را به بیعت وادار کنم. علی خود را به قبر رسول خدا رساند و با گریه و ناله همان کلماتی را که خارون به برادرش موسا گفت به آن حضرت عرض کرد ابو بک و عمر چند روز بعد و پس از اینکه هرچه میخواستند انجام دادند برای جلب رضایت فاطمه به خانه او رفتند. فاطمه فرمود خدا را شاهد میگیرم که شما دو نفر مرا اذیت کردید. من در هر نماز شما را نفرین میکنم تا پدرم را ملاقات کنم و از شما نزد او شکایت کنم. حتی بخاری و مسلم هم سریحن نوشتند، فاطمه در حال قذب ابو را را کرد و بر همان حال باقی ماند و با وی حرف نزد تا از دنیا رهلت فرمود. به دلیل اهمیت این وقایع که موجب شیوع آن در مستندات تاریخی شده راه برای هر گونه این کاری بسته است، این اخبار نشان می دهد که فرستادگان خلیفه به منظور ایجاد وحشت و پراکنده کردن مخالفان آتش به در خانه آوردند. در صورتی که شیعیان تاریخ را تحریف کردند و میگویند عمر در خانه را آتش زد فاطمه را بین در و دیوار فشرد و محسن او را به قتل رساند شیعیان احتیاجی به جعل و تحریف تاریخ ندارند در کتابهای خودتان به اندازه کافی دلایل موجود است مسعودی می‌نویسد بر خانه علی حجوم آوردند و در خانهاش را سوزاندند و او را با اکراه و اجبار از خانه بیرون کشانده و سیده زنان عالم را میان در و دیوار فشار دادند به گونه ای که محسن را سقند. ابن عرل مینویسد من برای استادم ابو جعفر نقیب نقل کردم که وقتی به رسول خدا خبر دادند که حبار ابن اسود با نیزه به هودج زینب دختر پیامبر حمله برده است و به همین سبب زینب بچه را سخت کرده حضرت خون حبار را مباه فرمود. ابو جعفر گفت اگر رسول خدا زنده بود خون آن کسی که باعث سخت جنین فاطمه شد را نیز مباه می کرد. و اما نظام معتزلی عالم اهل سنت نقل کرده است که عمر در روز بیعت ضربتی به پهلوی فاطمه زد که منجر به سخت جنین او شد. با این همه شرح و تفصیل خواهش می کنم بدون دلیل به شیعیان تهمت نزنید. ما نیازی به جر نداریم. ما به غیر از عقاید صحیح که مبتنی بر کتاب و سنت و عقل و اجماع است چیز دیگری نداریم. این حرف شما خیلی تعجب آور است. زیرا در کتاب های مهم شما اخباری هست که مخالف کتاب و سنت است و باعث لاعبالی شدن شیعیان می شود. حرف من عجیب نیست، کار شما عجیب است. مطالبی که بیان می‌کنید هیچ ربطی به موضوع بحث ندارد. تعدادی از این مطالب که باعث لاعبالی شدن ما شده، بفرمایید تا بدانید. آخوند ملا محمد باغر مجلسی در کتاب بحر الانوار از رسول خدا نقل کرده، دوستی علی ابن ابی طالب حسنه ای است که هیچ گناهی به او ضرر نمیزند و نیز نقل میکند که اگر کسی بر حسین گریه کند بهشت بر او واجب میشود از این قبیل اخبار که باعث فساد و جسارت شیعیان میشود بسیار است متاسفانه گروه شیعه با تکه بر این قبیل احادیث جعلی هر کاری که دلشان بخواهد انجام میدهند به این امید که محبت علی و گریه بر حسین تمام کارهایشان را درست می و بهشت را مختص آنان می نواید. فساد اخلاق و لاعبالیگریه برخی از عوام شیعه هیچ ربطی به این احادیث ندارد. اکثر افرادی که کارهای گناه انجام سر و سرکاری با حدیث و روایت و قرآن ندارند. مثل بسیاری از سنیها که غرق در شهباتند و به این احادیث هم اعتقادی ندارند. آیا جز این است که در قهوخانه‌های عمومی شما اقسام منکرات علنی بسیار بیشتر از آن چیزی که در میان ماست وجود دارد؟ اگر ما هم بخواهیم چون چنین بهانه‌هایی را بگیریم، می‌توانیم بگوییم که علت شیوع منکرات در میان شما فتواهای بی جای فقها و امامان شماست. کدام یک از فتاوی امامان ما باعث فساد شده است؟ فتواهایی مثل حلال بودن لواط در بعضی حالات، حلال بودن گوشت سگ و بعضی از فتواهایی که خجالت میکشم آنها را مزده کنم. زمخشری میگوید من شرم می کنم خود را از مذاهب اربعه معرفی کنم با توجه به فتاوای فاسدی که در این مذاهب وجود دارد. و اما در خصوص حدیثی که مورد اشکال شما واقع شد، جالب است بدانید که این حدیث در منابع خودتان هم وجود دارد. مناوی روایت کرد که پیامبر فرمود دوستی علی حسنه است که هیچ گناهی به او نمی نمیزند و دشمنی علی گناهی است که با وجود آن هیچ عمل خیری نافع نیست. همچنین از ابن عباس نقل شده که رسول خدا فرمود دوستی علی گناهان را می‌بلعد همچنان که آتش هیزم را می‌بلعد. لطفاً معنای این حدیث را شرح دهید. معنای حدیث بسیار ساده است. طبق آیات قرآن گناهان بر دو قسم کبیره و صغیره تقسیم می شوند در منابع دینی از گناهان صغیره به عنوان سیعه تعبیر می شود در آیه که سوره نسا میفرماید اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی نشده اید، دور شوید سیئات شما را پاک می کنیم و شما را در جایگاهی ارجمند جای می دهیم به حکم این آیه اجتناب از گناهان کبیره باعث آمرزش سیعات می شود. در این حدیث دوستی علی از بزرگترین حسنات معرفی شده به صورتی که هیچ گناه صغیری نمیتواند به او ضرر بزند. فکر نمی کنم تفاوتی بین گناه صغیره و با کبیره باشد. چون اگر فرد گناهکار توبه کند خدای متعال از تمامی گناهانش هم کبیره و هم صغیره میگذرد. بله اگر شخص گناهکار توبه کند خداوند او را میآمرزد. اما اگر بنده ای که مرتکب گناهان صغیره شده بدون توبه از دنیا برود، چنانچه محب امیرالمومنین باشد وارد بهشت می شود. ولی اگر محبت علی در دلش نباشد جهنمی خواهد بود. این معنای حدیث است. پس نه تنها این احادیث باعث تحریک شدن افراد در ارتکاب گناه نمی شود، بلکه برای افرادی که فریب به هوای نفس را خورده و مرتکب گناهان صغیره شدهاند، امیدوار می کند. اگر کسی از رحمت خدا ناامید شود و با این بهانه که آب که از سر گذشت چه یک نهی چه صد نهی خود را در گناهان غرق کند، در این صورت به حلاکت ابدی دچار می شود. و اما حدیثی که در مورد فضیلت گریه بر عبا عبدالله الحسین علیه السلام بیان فرمودید صحیح است لیکن نه در مورد همه افراد بلکه فقط در مورد کسانی که دارای اعتقادات صحیح می باشند واضح است که اگر کسی اعتقادات صحیح داشته باشد و به دستورات الهی عمل کند اهل نجات است پس دیگر چه احتیاجی به این مجالز پرهزینه؟ حرف شما کاملا درست است، اما به این نکته توجه کنید که فرد مسلمان هرچقدر در اعمالش دقیق باشد، ولی چون معصوم نیست مرتکب خطا می شود. خداوند متعال اسباب و زمینه هایی را برای جبران پراهم کرده تا انسان مؤمن با تکیه به این وسایل خود را در معرض اف خداوند قرار دهد. گریه بر مظلومیت حضرت سیدالشهدا از جمله این وسایل است شاید باور نکنید اما من خودم دیدم که بسیاری از افراد لاوبالی و گناهکار در پرتو مجالس عزاداری سیدالشهدا پشیمان شده و موفق به توبه شدند از آیش نقل شده رسول خدا فرمود هر که بر حسین گریه کند در حالی که عارف به حق آن بزرگوار بوده بهشت بر او واجب می شود. حضرت آقا ادعی میگویند حسین برای حب ریاست خروج کرد و جنگ او برای رسیدن به مطامع دنیوی بوده اولا از بدیهیات در دین مبین اسلام این است که خروج و جنگی که به انگیزه ریاست و مقاصد دنیایی باشد گناهی بس بزرگ است در صورتی که از نظر ما و شما حضرت امام حسین از هر گناهی حتی صغیره منزه و مبرا بوده اگر کسی به خاطر رسیدن به ریاست و قدرت قیام کند، زن و زنوبچی خود را همراهش نمیبرد و تا حدی که برایش مقدور است، خود را به اسباب و تجهیزات جنگی مجهز می کند. اگر کسی تاریخی نبرد کربلا را مطالعه کند، با اندکی دقت و تیزهوشی به هدف متعالیان حضرت پی میبرد. این حرفهایی که برخی معاندان بیان می‌کنند هیچ دلیل و مدرکی ندارد و فقط از روی دشمنی با اهل بیت رسول خداست چرا که حقانیت حضرت ابا عبدالله الحسین از آفتاب روشنتر است واقعا جا دارد که خودم را لعنت کنم که چرا کور کورانه و بدون دلیل و تحقیق سخن هر کس و ناکس را قبول می‌کنم ادعی که مثلا هدایتگر ما هستند زیارت شیخ عبدالقادر و امام اعظم ابو را جایز میدانند در حالی که هیچ حدیثی از رسول خدا در باره زیارت آنان نیامده. اما زیارت ریحانه رسول خدا را با وجود این همه حدیث و روایت بدعت می الان هدان تصمیم گرفتم امسال به زیارت حسین علیه سلام بروم و از خدا طلب و بخشش کنم. را با خاطر از خدمت شما مرخص در این هنگام با پایان یافتن عرایز جناب نواب و تأثر اکثر حاضرین در مجلس جلسه شب هفتم به خاتمه رسید